افسان برنامه از گروه جوان و فرهنگ به نام خدا، سلام. افسانه‌ها بزرگترین و غنیترین بخش گنجینه‌های های آمیانه هر سرزمینند در هر افسانهای حادثه و ماجرای خاص نقل میشه که بیان کننده غمها و شادی های انسان هاست و این راز مندگاری و دیرپایی افسانه هاست افسانه‌ها اگرچه هزاران رمز و راز در خود نهفته دارند اما خیلی ساده روان و سمیمیه افسانه مرد نادان و اردک های وحشی از داستان های آمیانهیه که در بین مردم سرزمین ویتنام رواج داره و مادر بزرگ‌ها و پدر بزرگ های قصه گو اون رو برای کچکتران نقل میکنن این افسانه رو امشب تقدیم شما میکنیم که برگرفته از کتاب هدگی کلاقا ترجمه عبدالسالح پاک و تنگرگولی یلیه روزی روزگاری در سرزمین ویتنام مردی پرخور و نادان بود که هیچ کاری جز خوردن و خوابیدن انجام نمیداد. زن بیچاره این مرد پرخور و نادان از صبح تا شب توی این خونه و اون خونه کار میکرد تا بتونه غذاهایی رو که شوهر پرخورش دستور میداد تهیه کنه. مرد پرخور و نادان از صبح که از خواب بیدار میشد هیکر درشت و، گوشتالودش رو به سختی تکون میداد و یک بند دستور صادر میکرد. آی زن، صبحانه پنیر تازه و گردو میخوام. آی زن، کجایی؟ امروز یه آب گوشت حسابی برا نهارم بار بذار. آی زن، شام، شام، شام یادت نره میگو میخوام با مخلفاتش. زن بیچاره دور خودش میچرخید و نمیدونست کدوم دستور شوهرش رو انجام بده. و بالاخره هم طاقت نیاورد و با تذرع نالی و گفت آه ای مرد آخه منم آدمم به خدا دیگه خسته شدم مگه من چقدر توان کار کردن دارم آخ از زوره درد دست و پا خواب به چشام نمیاد نه دیگه واقعا دیگه نمیتونم بعدم زد زیر گریه مرد که گریه زنش رو دید با ناراتی گفت حالا اینقدر آبگوره نگیر پاشو پاشو یه چیزی بیار بخورم که دلم داره مالش میده زن که دیگه از بی و پرخوری شوهرش کلافه شده بود با عصبانیت فریاد زد به جهنم که دلت مالش میده به بعد هم تحدید اضافه کرد از امروز غذا بی قضا مرد که از حرفهای زنش حسابی تعجب کرده بود با ناباوری گفت تو؟ تو که این رو جدی نمیگی میگی؟ زن توی صورت شوهرش خیره شد و با قاطعیت گفت البته که میگم دیگه از دست پرخوری تو خسته شدم خسته و بر سر مرد فریاد کشید فهمیدی یا نه؟ مرد که هنوز در حالت تجب و شگفتی بلا تکلیف مونده بود سکوت کرد زن بهش نزدیک شد و گفت یه نگاهی یه نگاهی به و برت بنداز همه یه مردها از صبح تا شب کار میکنن اون وقت تو تو فقط هیچ گنده کردی و باز هم به شوهرش نزدیک و نزدیک تر شد و مستقیم توی صورتش زد و اضافه کرد تو تو فکر میکنی من آدم نیستم؟ به استراحت و آسایش نیاز ندارم؟ بعد صداشو برند کرد که از امروز دیگه تو باید کار کنی فهمیدی؟ مرد؟ بندارحتی گفت من من کار کنن چه جوری آخه خیلی سخته زن شونه بالا انداخت و گفت من نمیدونم اگه میخوای از گرسنگی نمیری یه فکری به حال خودت بکن مرد که دید زن دیگه حاضر نیست هیچ کاری برای اون انجام بده با تذرو و سادگی گفت من باید چیکار کنم من نمیخوام از گرسنگی بمیرم زن با حیجان گفت تو تو میتونی به بازار بری و حداقل خرید و فروش کنی از این دست بخری و از اون دست بفروشی این وسط یه سودی هم نصیب خودت میشه بعد از شوهرش پرسید این کار که ازت بر میاد نه مرد سینه‌ش رو جلو داد و با غرور گفت البته که بر میاد مگه بی دست و پام ولی زن سرش فریاد کشید ولی چی ها دنبال بهونه میگردی مرد گفت نه نه نه نه من فقط پول ندارم میدونی که این کار سرمایه میخواد زن سرمایه زن با خوشحالی گفت سرمایه اگه تو قول بدی بری دنبال کار کاسبی منم قول میدم یه سرمایه برات جور کنم مرد قول داد که به دنباله کار و کاسبی بره و زن هم بل داد سرمایه این کارو جور کنه خلاصه قرار شد صبح زود مرد پرخور و نادان به دنبال کار و کاسبی بره. مردای اون روز مرد پرخور و نادان راهی بازار شد رفت و رفت تا به کنار تالاب کوچکی رسید چند تو اردک توی تالاب در حال شنا کردن بودن مرد با دیدن اردک ها به حیجان اومده گفت چه اردک های قشنگی میتونم اونا رو بخرم و با فروش اونها پول زیادی به دست بیارم مرد برای پیدا کردن صاحب اردک نگاهی به دور و برش انداخت ولی در اون حوالی کسی دیده نمیشد. مرد جلوتر رفت کم اون طرفتر در کنار مزرعی سرسبز دو پسر بچه در حال چروندن گاواشون بودن مرد با شتاب جلو رفت و از بچه ها پرسید بچه, ها بچه ها. اون اردک توی طالب مال شماست؟ نگاه متعجب بچه ها به تالاب کشیده شد اردک ها هنوز در حال شنا کردن بودند. بچه ها می دونستن که این اردک ها اردک های و از این رو متوجه سادگی و نادانی مرد شدن و آهسته به هم گفتند، این مرد فرق بین اردک های وحشی اردک های اهلی رو نمی دونه بعد خنده ای کردن و برای اینکه کمی هم تفریح به شوخی به مرد گفتند. بله بله بله بله این اردک ها مال ماست مرد با حیجان گفت اه اه اگه اگه اونا رو میفروشین من خریدارم ها بچه ها که انتظار شنیدن این حرف رو نداشتن با تعجب پرسیدن چی؟ بفروشیم اون اردک ها رو مرد نادان در خرید اردک ها مصررانه ایستاد بچه ها هم وقتی دیدن مرد نادان واقعا قصد خرید اردک وحشی رو داره به مرد نادان گفتن اگه اگه پول خوبی بدی ما اردک رو میفروشیم. مرد نادان با خوشحالی گفت البته البته که پول خوبی میدم. بعد جلوتر رفت و از بچه ها پرسید ببینم چهار که خوبه؟ بچه ها بلافاصله پاسخ رو کوان خیلی کمه نه نه نه نه, نه ما نمیفروشیم مرد با ناراحتی و با حالتی مستحصل گفت نمیفروشین. آخه من کوان بیشتر ندارم ببینین بعد تموم جیبهای لباسش رو بیرون آورد و به بچه ها نشون داد بچه ها در دل به سادگی و نادانی مرد خندیدند مرد دوباره از بچه ها پرسید بالاخره چهارکان میفروشین بچهها به علامت تصدیق سری تکون دادن و گفتن بله میفروشیم فقط مرد با تعجب پرسید فقط چی بچهها نگاهی به همدیگه انداختن و منمن کنان گفتن فقط فقط ما یه شرط داریم مرد نادان بهتن گفت هر شرطی باشه قبول میکنم هر شرطی باشه قبول میکنم بچهها قیافه یفصردهی به خودشون گرفتن و به مردون گفتن این اردک به ما خیلی عادت کردن ما اونا رو بزرگ کردیم تو باید اونا رو سرگرم کنی تا ما از اینجا دور بشیم بعد با خیال راحت بری و اونا رو بگیری و با خودت ببر بعد هم تاکید کنن اضافه کردن که اردکها نباید متوجه دور شدن ما بشن مرد نادان پذیرفت و بچه ها چهار کوهان رو گرفتن و با خوشحالی از اونجا دور شده مرد نادان بلا فاصله بعد از دور شدن بچه ها به طرف تالاب رفت اردکها با دیدن مرد که با قدم های پرشت ها به طرف اونا می رفت ترسیدن و به پرواز در اومدن و از اونجا دور شدن مرد نادان وقتی پرواز اردک ها رو دید با خودش گفت آه آه آه پرواز هم برای اردک ها لازمه ها شونن رو بالا این دخت با سادگی ادامه داد باشه باشه من همینجا منتظر اردکا میمونم بعد رفت و زیر سایه درختی و چشم دوخت به آسم آفتاب کم کم به وسط آسمون رسید و هوا رو به گرما رفت ولی از اومدن اردک های وحشی خبری نشد که نشد مرد که سر رفته بود و گرسنگی بد جوری آزارش بیداد با خودش گفت آخ جاید گرستمه چه اردک بیخیالی خسته شدم از پس با آسمون چشم دوختم دلم از گرسنگی داره ضعف میره و بعد باز هم با همون سادگی و نادونی خودش صداش رو رو به آسمون بلند کرد و گفت آی شما کی میخواییم برگردین ها من خسته شدم من گرسنمه خورشید از پهنه آسمون کنار رفت و هوا داشت رو به تاریکی میرفت ولی باز هم از برگشتن اردکهای وحشی خبری نشد که نشد مرد نادون که دیگه از این همه انتظار کلافه شده بود با نومیدی آهی کشیده گفت آه نه فایده ای نداره این اردک های بیخیال حالا حالا ها خیال اومدن ندارن بعد یهو بیاد زنش افتاد که تا حالا حتما نگرانش شده مرد نادون با بیحوسلگی هیکر درشتش رو جابجا جا کرد و از جا بلند شد و در حالی که هنوز نگاهش توی آسمون میچرخید به طرف خونه برافت بالاخره مرد نادون با خستگی و ضعف به خونش رسید زن که منتظر شوهرش دم در حیات ایستاده بود با دیدن شوهرش با خوشحالی به پیشوازش رفت و پرسید اومدی خسته نباشی خب بگو ببینم چی خریدی چی فروختی مرد با صدای ضعیفی جواب داد صبر داشته باش فعلا دارم از گرسنگی میمیرم خیلی گرسنمه زن اخ می و گفت نه نترس نمیمیری غذا تو آماده کردم فقط بگو چیکار کردی مرد با همون صدای ضعیف گفت اردک چندتا تا اردک خریدم ولی اونا رو هنوز نفروختم زن با تعجب نگاهی به دور و برش انداخت و از شوهرش پرسید اردک ولی من که اینجا اردکی نمیبینم اونا کجان مرد با سادگی گفت میدونی چیه وقتی خواستم اونا رو بگیرم پرواز کردن و رفتن تو آسمون منم منم هرچی صداشون زدم نیومدن. زن با عصبانیت صداشو بالا برد و گفت اونا پرواز کردن؟ مرد نادون با لحن آرونی گفت آره آخه وقت پروازشون بود و وقتی خشم زنش رو دید ترسید و گفت ولی یعنی اونا حتما بر میگردن. اصلا فردا میرم اونا رو میارم. بعد با لحن خاصی گفت. آه تا حالا اینقدر گرسته نمونده بودم. راستی گفتی غذا آماده است ها؟ زن چشم و به شوهرش رفت و با اصابانگت گفت. کارت بخوره به اون شکم واندد. تو تو تو تو به جای اردک های احلی اردک های وحشی رو خریدی؟ این کار ای، این کار یعنی؟ و دیگه نتونست ادامه بده خشم تمام وجود زن رو فرا گرفته بود مرد که عصبانیت و خشم زنش رو دید با تعجب پرسید اردک وحشی اردک اهلی خب اه، خب اینا با هم چه فرقی دارن اردک اردکه من من نمیفهمم چی میگی زن با عصبانیت تاکید کنن گفت البته که تو هیچی نمیفهمی تو فقط فرق قضاها رو با هم دیگه خوب میفهمی. بعد خرلوند کنان ادامه داد چار کن مفت مفت از دستمون رفت که رفت همه چی فدای نادونی تو شد تو خیلی نادونی نادون نادون مرد با دلخوری گفت چرا اینجوری حرف میزنی من اصلا نادون نیستم، خیلیم زرنگم زن دوباره چشکوری به مرد رفت و گفت آره، آره، تو خیلیم زرنگی مرد با غرور گفت البته که زرنگم فردا زرنگی من بهت ثابت میشه زن پوسخندی زد و پرسید <تصفيق> چجوری میخوای زرنگی تو ثابت کنی؟ مرد گفت من، فردا میرم و با اردک ها حالا میبینی زن دوباره عصبانی شد و بر سر مرد فریاد کشید آخه مرد تو داری چی میگی؟ تو تو چجوری میتونی اردک های وحشی رو برگردونی؟ ها؟ بگو چجوری میتونی؟ مرد با سادگی گفت خب اونقدر کنار تالاب میشینم تا اونا برگردن زن هیچی نگفت و خشمش رو فرو خورد. مرد هم مشغول خوردن شام شد و برای فردا نقشه کشید که دنبال اردک های وحشی بره و زرنگیشو به زنش ثابت کنه. اون روز مرد نادون برای برگردندن اردک های وحشی به کنار تالاب رفت اما هرچه به آسمون چشم دوخت از اردک های وحشی خبری نبود که نبود بالاخره خسته و نومید به طرف خونش برافتاد نیمه راه را که رسید یادش اومد که قرار امروز زرنگیشو به زنش ثابت کنه بنابراین راهشو کچ کرد و در کوچه های اطراف برافتاد مرد نادون همینطور که داشت می به خونه مجللی رسید. پنجری از اتاقها باز بود و صدای پچپچی از اون به گوش می رسید. مرد نادون ایستاد و با کنجکاوی به صدایی که به گوشش می رسید گوش داد. صدا صدای مردی بود که به زنش می گفت زن مهره خدا رو شد که روزگار خوشی در کنار تو دارم عزیزم وقتی با تو هستم احساس میکنم توی آسمون آبی پرواز میکنم و تمام دنیا رو از اون بالا نگاه میکنم آه چقدر زندگی قشنگه و هنوز حرف مرد تموم نشده بود که مرد نادون شوغ زده و با حیجان فوری سرش رو از پنجره اتاق داخل برد و گفت قربان قربان تو که در آسمونها پرواز میکنی یه نگاهی هم به و برت بنداز ببین میتونی اردکایی منو اون بالا ببینی؟ مرد و زنش که از دیدن سر مرد از پنجره حسابی جا خورده بودن با شتاب به طرف او دویدن و از اینکه این مرد غریبه به حرفای خصوصی اونا گوش میداده بسیار ناراحت و عصبانی شدند زن با خشک گفت تو حق نداری به حرفای خصوصی ما گوش بدی؟ به شوهرش اشاره کرد و مردم با تندی به طرف کوچه دایید تا مرد نادان رو ادب کنه. زنش که متوجه نادونی مرد نادون شده بود خطاب به شوهرش گفت عزیزم کاری به این مرد نادون نداشته باش. از حرفاش معلومه که نادون نادونه. از قدیم هم گفتن نادون ادب بشو نیست که نیست. مرد خشم خودش رو فرو خورد و به اتاق برگشت و پنجره اتاق رو محکم بست مرد نادون هم دست از پادر به طرف خونش برافت در حالی که هنوز نگاهش به دنبال اردک های وحشی توی آسمان می شنیدن و نقل افسانه یه مرد نادان و اردک های وحشی لذت برده باشین هر افسانه پیامی داره که ارزشمند و عبرت و میتونه در رشد و اطلاع فکری و در روان و رفتار فرد و جامعه تأثیر زیادی بذاره این برنامه کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالحپور اجرا مهران دوستی صدابردار حیدر سفتری و تهیه کننده زهرا عبدالله زاده تا افثانی دیگر بدرود